روزه خلده بر این خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان است گنج ازلت که تلسمات عجایب دارد فتح آن در نظر رحمت درویشان است قصر فردوس که رزوانش به دربانی رفت منظری از چمن نزهت درویشانه است آن چه زر می شود از پرتوان قلب سیاه کیمیاییست که در صحبت درویشانه است آن که پیشش به نهد تاج تکبر خرشید کبریاییست که در حشمت درویشانه دولتی را که نباشد غم از آسیب زباد بی تکلف به دولت درویشان است خوش قبله حاجات احاجات جهانند ولی سببش بندگی حضرت درویشان است روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند مظهرش آینه تلعت درویشان است، از کران تا به کران لشگر ظلم است ولی از ازل تا به عبد فرصت درویشان هست ای توانگر مفروشین همه نخوت که تو را سر و زر در کنف همه درویشان هست گنج قارون که فرو می شود از قهر هنوز خانده باشی که هم از غیرت درویشان هست حافظ ار آب حیات عدلی می خواهی من به اشخاک در خلوت درویشان است من قلام نظر آصف اهدم را صورت خاجگی و سیرت درویشان است